بسم الله الرحمن الرحیم برنامی خداوندی به اندازه مهربان نهایت با رحمت تا ما قرآن را بر تو برای آن نازل نکردیم که رنج بکشی بلکه آن را صرف به حیث پندی برای کسانی که از خدا ترسند نازل کردیم نازل شده است از جانب آن که زمین و آسمان های بلند را آفرید خدای رحمانی که بر عرش مستولی است، آنچه در آسمانها و در زمین است و آنچه در میان این هردو و در زیر زمین است از آن اوست اگر به آواز بلند سخنگویی بیگمان او پنهان و پنهان تر را می داند خدا جز او معبودی نیست نامهای نیک از آن اوست و آیا داستان موسا به تو رسیده است؟ انگامی که آتش را دید به خانواده اش گفت اینجا دران کنید من از دور آتشی دیدم شاید من با شما پاره از آن آتش بیاورم یا با وسیله آن آتش راه را بیامم اما چون پیش آتش آمد ندا شد ای موسا بگمان که من پروردگار تو هم کفشای خود را بکش واکن تو به وادی مقدس تو ها می باشید من تو را به پیانبری برگذیده پس به آنچه به تو وحیه می شود گوش فرادی که من خدایم جز من معبودی نیست پس تنها مرا عبادت کن و نماز را برای یاد من به تمام و کمال ادا کن بیگمان قیامت آمده نیست می خواهم آن را پنهان دارم تا هر کس به اساس کوشش خود پاداش داده شود. بنابراین تو را نباید از این امریان یعنی ایمان به قیامت کسانی که با آن ایمان ندارند و هوا و حواس خود را پیروی می کنند باز دارند زیرا در این صورت نابود می شود ای موسا در دست راست تو چیست؟ موسی گفت این اصای من است که بر آن تکیه می کنم و با آن برگهای را برای مواشی خود فرو می ریزم و از آن برای فایده های دیگر نیز هست؟ خداوند گفت ای موسی آن را بیافکن. موسی آن را افگند ناگهان ماری شد که این سو و آن سو می دوید خداوند گفت آن را بیگیر و مترس ما, ما آن را به حالت نخستین باز می گردانیم. دست خود را به زیر بغل خود ببر تا سفید درخشان بیعیب برایت و این معجزه دیگر است تا به تو از نشانه های بزرگ خود نشان دهیم بسوی فرعون براو بیگمان او سرکشی کرده است موسی گفت پروردگارا سینه ام را برای من فراخ گردان و کار مرا برای من آسان کن و گره را از زبانم بکشای تا سخنم را بفهمند برای من وزیر از خاندانم قرار بده هارون برادر مرا و با وسیله او پشتم را قوی گردان و او را در کار من شریک ساز تا تو را بسیار ستایش کنیم و تو را بسیار یاد کنیم بیگمان تو همواره با حال ما بینایی خداوند گفت ای موسا بیگمان آنچه خواستهی با تو داده شد و بیگمان بار دیگر نیز با تو منت نهادیم انگام که به مادرت آنچه را که لازم بود الهام کردیم که او یعنی موسا را در صندوق بینداز و صندوق را در دریا بیافکن تا دریا آن را به ساحل بیافکند و او را کسی که هم دشمن من است و هم دشمن او بگیرد و من محبتی بر تو از خود افغاندم و تا زیر نظر من پرورده انگامی که خواهرت در نزدیک قصر فرعون میرفت و می گفت و آیا به شما خانواده را نشان هم که این طفل را تربیه کند؟ پس تو را نزد مادرت باز آوردیم تا چشم او روشن شود و غم نخورد سپس تو کسی را کشتی و ما تو را از مشکل آن نجات دادیم و تو را به روش های گوناگون آزموندیم سپس تو چندین سال در میان اهل مدین باز تو ای موسی و, و اینجا طوری که مقرر شده بود آمدی و من تو را برای خدمت خودم ساختم گفتم برو تو برادرت با نشانه های من و در یاد من سوستی مکنید به سوی فرعون بروید که او واقعا سرکشی کرده است ولی با او به نرمی سخن بگوید شاید پند گیرد یا بترسد گفتند ای پروردگار ما می ترسیم که مبادا فرعون بر ما تجاوز نماید یا سرکشی کند دوان گفت مترسی ترسیم من من با شمایم همه چیز را میشنوم و می‌بینم. پیش او بروید و بگوید حتی که ما فرستادگان پروردگار تو هستی بنی اسرائیل را با ما بفرست و ایشان را عذاب نکن بیگمان با نشانه از پروردگارت و سوی تو آمدیم و سلام بر کسی که از راه راست بروی کرد به ما وحی شده است که عذاب بر کسی تطبیق شده نیست که حق را تکذیب کند و از آن رو گرداند راون گفت پس کیست پروردگاری شما ای موسا؟ گفت پروردگار ما ذات است که به هر چیز لازمه آفری نشه آن را داد و سپس او را رحمهی کرد. ران گفت پس آیا سرنوشت پیشینیون چه خواهد بود؟ موسا گفت علم آن نزد پروردگار در کتابی سب شده است. پروردگاری من نه غلط می کند و نه هم فراموش می ذاتی که زمین را برای شما محل آسایش گردانید و برای شما در آن راه های کشیده و از آسمان آب فروریخت که با وسیله آن جوره های از روی دنی های گناگون را برآوردید از اینها بخورید و مواشی خیش را بچرانید بگمان در این نشانه برای صاحبان خرد. از خاک شما را آفریدیم و در آن شما را برمیگردانیم و از آن باری دیگر شما را بیرون می آماریم. و بیگمان با فرعون همه نشانه های خود را نمایان دیم اما او آنها را تکذیب کرد و از پذیرش آن سر بازد فرعون گفت ای موسی آیا آمده ای تا با جادوی خی ما را از سرزمین ما بیرون کنی ما نیز واکن جادوی همانند آن خواهیم آورد. پس میان ما و خود وعدهای بگذار که نه ما از آن تخلف و نه هم تو در میدان هموار موسی گفت وعدگاه شما روزی زیناتی یعنی عید است و مردم در هنگام چاش جمع شد آنگاه فرعون رفت و ترح خیش را ریخت و باز آمد موسی به ایشان گفت وای بر شما بر خدا دروغی را بر مبندی پس شما را به وسیله عذابی محو کند و شکست از آن کسی است که برخدا دروغ برمست ایشان با دیگر در امر خیش منازعه کردن و این راز و نیاز خود را پنهان نگه داشتند. ایشان گفتند واقعا این دوتن جادوگرانی ان که میخواهند با جادوی خیش شما را از ملک شما بیرون سازند و آین ستوده شما را از بین ببرند پس طرح خیش را هماهنگ سازی و آنگاه صف خیش را فشرده درمایید و امروز کامیابی از آنی کسی است که برطری خیش را ثابت سازد گفتند ای موسا یا این است که تو عصای خیش را میافکنی، یا ما خواهیم بود کسانی که اول می موسی موسا گفت بلکه شما بیافکنید. پس ناگهان رسمانها و عصاهای ایشان سبب جادوی ایشان به خیال وی آورد که به سرعت حرکت می کند پس موسا ترس خفیف در دل خیش احساس کرد گفتی مترس بیگمان تو بر ایشان برتری و چیزی را که در دست راست توست بیافغان، تا آنچه را صاحران ساختن ببلعد بیگمان آنچه را ساختهاند صرف فریب جادوگر است جادوگر به هر جایی که بیاید رستگار نمی شود. در این حال جادوگران به سجده افتاده گفتند به پروردیگار هارون و موسی ایمان آوردیم فیران گفت آیا پیش از اینکه که با شما اجازه بده هم با او ایمان آوردی؟ یقینا او بزرگ شماست که با شما جادو مخته است. پس بیگمان من دستها و پاهای شما را از جانب مخالف یکدیگر دیگر می و شما را بر تنه درختان خرما و بددار می زنم تا طور یقین بدانید که مجازات کدام که ما سختتر و بادوامتر است. گفتند تو را هرگز بر نشانه روشنی که به ما آمده است و کسی که ما را آفریده است بر نمی بزینیم. پس هرچی می خواهی دستور دی بگمان تو صرف به زندگی این دنیای ما خاتمه می دی ما واقعا به پروردگار خیش ایمان آوردیم تا گناهان و چیزی را از جادوگری که ما را بدان مجبور ساختی ببخشد و خداوند بهتر و ماندگارتر است. یقینم کسی که در نزد پرواردگارش به حیث گناهکار بیاید برای او دوزخ است در آن می میرد و نه هم زنده می ماند و کسی که نزد او به حیث مؤمن بیاید که اعمال شایسته کرده باشد پس برای ایشان درجات بلند است به های همیشگی که در زیر درختان آنها جویبارها در جریان است در آنجا جودانا به سر می برند این است پاداش کسی که خود را پاک سخت. و بگمان ما به موسا وحیه کردیم که شبانگاه بندگانم را ببر و برایشان راه خشکی را در دل دریا بشگاه نه از گرفتار شدن توسط فرعون بترس و نه هم از غرق شدن در دریا در این حال فرعون ایشان را با لشکریان خیش دنبال کرد پس دریا آنها را فرو گرفت و کاملا پوشانی. اری فرعون قومش را گمراه کرد و رحیاب نگردانید ای بنی اسرائیل حتی که شما را از شر دشمنان شما نجات دادیم و با شما در سمت راست کوه تور یعنی سینا وعده گذاشتیم و با شما من و صلوا فرو فرستادیم و گفتیم از چیزهای پاکیزهای که برای شما روزی گردانیدهایم بخورید ولی در استفاده از آن افراد نکنید تا مبادا خشم من بر شما فرو داید و بر کسی که خشم من فرو داید واقعا که هلاک می شود اما بگمان که من کسی را که توبه کرد ایمان آورد عمل شایسته انجام داد و آنگاه رهیاب شد آمر زنده ام گفتم ای موسا چی چیز تو را بر آن داشت تا از قومت پیشی گیری موسا گفت هم ایشان در پی من روانند و من به سوی توش شتافتم ای پروردگارم تا از من خوشمد شدید خداوند گفت ما بعد از تو قومت را به آزمایش مبتلا ساختی و سامیری ایشان را گمراه کرد پس موسا خشمگین و افسوس کنان به سوی قوم خیش بازگشت گفت ای قوم من آیا پروردگار شما با شما وعده نیک نکرده بود پس آیا این دوره بر شما طولانی شد یا خواستید بر شما خشمی از پروردگار شما فرو داید که شما عهد خود را با من نادیده گرفتید گفتند ما به اختیار خود عهد تو را نگرفتیم مگر بار سنگینی را از زیور قوم فرعون برداشته بودیم آنها را به یک سو انداختیم سامیری اینچین انقا کرد و به این ترتیب برای ایچان گو را بیرون آورد جسد را که همچون گاو همبع می کشید در این حال گفتند این است معبود شما و معبود موسی و به این ترتیب او فراموش کرده است آیا نمی بینند که آن گو سالس و خنی را به ایشان جواب دادن نمی توانست و توان رساندن زیان و سودی را به ایشان نداشت؟ و بگمان هارون به ایشان گفته بود ای قوم من شما در این کار مورد آزمایش قرار گرفتید و حقا که پروردگار شما بسیار مهربان است پس مرا پیروی کنید و فرمان مرا بپذیرید گفتند به گونه پیوسته و پرستش آن دوام می دهید و مجاور آن می باشیم تا آنکه که سوی ما بازگرده موسی گفت ای هارون چی چیز تو را از پیروی من باز داشت؟ چون ایشان را دیدی که گمراه شده؟ آیا از فرمان من رو برتافتی؟ هارون گفت ای پسر مادر من نه ریشم را بگیر و نه موی سرم را بگمان من ترسیدم ببادر بگویی میانی بنی اسرائیل تفریقه انداختی و به حرفم موسا گفت مشکل بزرگی تو چی بود ای سامیری؟ سامیری گفت من چیزی را دیدم که دیگران آن را ندیدند. پس مشتی از خاک از پل پای رسول گرفتم و آن را در میان این تلای گداخته افغاندم و این چنین نفسم به من این را جلو داد. موسا گفت پس برو و برای تو در زندگی این مجازات تعیین شده است که بگویی به من تماس گرفتن نشود؟ و بگمان برای تو معایده است که از آن هرگز با تو تخلف کردن نمی شود به سوی معبود خود بنگر که خدمت و عبادت او را بر خود لازم گرفته بودی واکن آن را می سوزانیم و سپس آن را ریز ریز کرده خاکسترش را به دریو می پاشیم به درستی که معبود شما همان خدای است که جز او معبودی نیست علم او همه چیز را فرا گرفته است این چنین به تو از رویدادهای آن چه گذاشته است بیان می کنیم و بیگمان به تو از جانب خود ذکری دادیم یعنی قرآن مجید را به تو نازل کردیم کسی که از آن رو بگرداند گمان در روز قیامت گناهی بزرگی را به دوش میگیرد. همیشه در آن می و چی بد است برای ایشان این باری که در روز قیامت به دوش می کشد روزی که در سور دمیده شود و مجرمان را در آن روز با چشمان کبود هش رو می بین خیش آهسته می درنگ نکردید در دنیا مگر ده روز ما به آنچه می گویند داناترین انگامی که بهترینشان از نظر روش می گوید درنگ نکردید مگر یک روز. از تو در مورد کوهها می پرسند پروردگارم پروردگارم آنها را از ریشه برمی کند و برباد می دهد و آن را همچون میدان صاف میگرداند در آن هیچ پستی و بلندی را نمی بینی در آن روز همگان دعوتگر الهی را پیروی می و از آن هیچ انحراف به عمل نمی آید آوازها از ترس خدای رحمان پخش می شوند و تو جز آواز بسیار آهسته چیزی نمی شون. در آن روز شفاعت سودی ندارد مگر شفاعت کسی که خدای رحمان به او اجازه دهد ده و از سخنش راضی باشد خداوند آنچرا پیش روی و پشت سر بندگان قرار دارد همه را می داند. ولی آنها به علم او احاطه ندارد چهره در حضور زنده به خود پای انده زلیلی می شوند و بیگمان کسی که مرتکب ستم گردیدن ناکام و بینواشد و هر کسی که چیزی از کارهای نیکو انجام دهد ده در حالی که مؤمن هم باشد پس نه از ستمی ترسد و نه هم از شکستی و این ما این را قرآن عربی نازل کردیم و در آن به اشکال گوناگون روشدارهای را آوردیم تا باشد که پترسند یا به ایشان مایه پندی شد پس بلند مرتبه است خدای پادشاه برحق خواندن قرآن پیش از آنکه که وحی آن به تو تمام شود شتاب مکن و بگو پروردگاه را بردانشم بیارزا و بگمان پیش از این با آدم پیمان بستیم اما او فراموش کرد و ما برای او عزمی نیافتیم و چون با فرشتگان گفتیم آدم را سجده کنید پس همه سجده کردند. مگر ابلیس که سر بازد آنگاه گفتیم ای آدم این واقعا دشمن تو همسر توست بنابراین باید شما را از جنت بیرون نکند که بدبخت می شود برای تو در آنجا ساز و برگی هست که گرسنه و برهنه نمی مانی و نه هم در آن توش نمی مانی و نه هم از گرمی آفتاب رنجی می بری ولی شیطان به او وسوسه کرد و گفت ای آدم آیا تو را سوی درخت یعنی عمر جاودانی و ملکی که فناناپذیر است رهنمایی کنم؟ سرانجام هر دو از آن درخت خوردن پس شرمگاه ایشان برایشان برای ظاهر شد و از این رو بناچار به چسباندن برگهای درختان بهشت برخیشتن آغاز کردند. به دین ترتیب آدم پروردگارش را نافرمانی کرد و راه خود را نیافت سپس پروردگارش او را برگوزی پس توبهش را پذیرفت و به این ترتیب او راه خود را باز یافت خداوند گفت هر دوی شما با هم از اینجا فرود دایید در حالی که بعضی شما دشمن بعضی دیگرید پس چون به شما از جانب من هدایت آمد هر که هدایتم را پیروی کند پس نه گمراه می شود و نه هم بدبخت اما هر که از یاد من رو بگرداند پس بیگمان برای او زندگی تنگی است و ما او را در روز قیامت نابینا حشر می کنیم می گوید ای پروردگار من چرا مرا نابینا حشر کردی حالان که پیش از این بینا بودم؟ خداوند می گوید از آن جایی که آیات من به تو آمد و تو آن را نادیده گرفتی اینک تو هم امروز نادیده گرفته می شوی یعنی چیزی را نمی بینی و به دین ترتیب کسی را که از حد گذشت و به آیات پروردگارش ایمان نیاورد جزا می دهیم و عذاب آخرت ای بسا که دردناکتر و پایدارتر است آیا برای رهیابی ایشان این کافی نیست که چی تعداد ناصلهای را هلاک گردانیدیم که اکنون ایشان در منازل ویران شده آنان گشت و گذار می کنن. بیگمان در این برای صاحبان عقل نشانه است. اگر حکم مقرر شده از جانب پروردگار تو و وعده مقرر شده مبنی بر اینکه عذاب و جهان آخرت موکول گردیده نمی بود حتما باید مجازات ایشان در این دنیا عملی می شود. پس در برابر آنچه می گوین شکی باباش و پروردگار خورش را همواره پیش از طلو آفتاب و پیش از غروب آن به پاکی به و در های از شب و در اطراف روز نیز با ستایش او بپرداز تا باشد که خوشنود شد و چیزهایی که دسته از آنها را بهره ور ساختیم چشمان خود را مدوز اینها بهره زندگی این دنیا اند تا با آن ایشان رازمایش کنیم اما چیزی که پروردگاری تو روزی دهد و نصیب گرداند بهتر و پایندهتر است. اهل خیش را به نماز فراخان و خود نیز به آن شکیبا باش. ما از تو روزی نمی بلکه ما تو را روزی می دهیم و عاقبت نیکو برای پرهیزگاران است. می گویند چرا او ای از پروردگارش برای ما نمی آورد. آیا برای ایشان نشانه های روشن از کتاب های پیشین نرسیده است؟ اگر ما ایشان را قبل از این یعنی نزول قرآن با عذاب حلاک می کردیم یقین می گفتند پروردگارا چرا به ما پیامبری نفرستادی؟ تا از آیاتت پیروی می کردیم پیش از اینکه زلیل و رسوا می شدیم بگو هر کدام از ما و شما در انتظار است پس انتظار بکشید و با زودی خواهید دانست که چه کسانی برای راستند و چه کسانی رهیاب شدند